گر تیغ در کوی آن ما گردن حادیم الحکم لله آین تقواما نیز دانیم لیکن چه چاره با وقت گمراه ما شیخ و وائز کمتر شناسی یا جام باده یا قصه کتا من رند و آشق در موسم گل من توبه از تغفر الله مهرت تو عکسی بر ما نیافت آین رویا آغ از دلت آه از صبر و مرون و العمر و فانی یا لایت شعری حتی ما حافظ چه نالیگر و است خون با خورد در گا و بی